سمیه من الشیطان اللئین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و عالی طافرین خدمت عزیزاد دانشجو عرض عزیز سلام داریم و از صبح بخیر عرض ان شاء انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و در پناه خداوند شادمان و از هر گونه بلایی هم جسمی و روانی و روحی به دور باشید الله. به ماه رو هم خدمت شما تبدیل اما بحث ما ما در مقدمات روز اصطلاحات و مباحثش رو که به عنوان مقدمه شما لازم داشتید تا بحث عروض رو و بحور شعر رو برای شما بخونیم به طور مفصل بیان کرد. اما امروز قصد اینه که دیگه وارد بحث روز بشیم و بحور شعر رو برای شما بخونیم حالا این بهرهایی رو که ما برای شما میخونیم چند تا بهر رو که بیم به جلو شما متوجه خواهید شد که هر کدوم از این بحرهای شعر برای معنا و مفهومی از شعر مناسبه یعنی شاعر اگر میخواد قذل بگه دیگه نمیاد بحر رجز انتخاب کنه یا بحر رمل انتخاب کنه یک نفری هم اگر میخواد شعر بلندی در رابطه با مسائل حماسی بگه این نمیاد مثلا بهره طویل انتخاب بکنه پس بنابراین این از این بحور برای نوعی از شعر و برای زمینه از مقصود شاعر مناسبه و شاعر معمولاً وقتی که شعر رو قصد میکنه یکی از این بحرها رو برای اون انتخاب میکنه اینا بند برای معانی و مفاهیمی که ما مد نظرند اولین بهری رو که کتاب ما شروع میکنه برای بیان بحر تویل بحر طبیل. نگاه کنید میگه که مفتاح بحر حالا برای هر کدوم از این بحرها یک کلیدی رو ذکر میکنه این کلید برای اینه که شما حفظ کنید که مثلا بدونید بحر طویل وزنش چیه که یادتون نره چون خیلی از مواقع هست ما یه شعری رو املاع عادیشو رو میبینیم بعد تقطی میکنیم املاع حروزیش رو مینویسیم بعد رمز گذاری میکنیم اون یو و خط تیره حالا سبب سقیل و خفیف و وقتد مجموعی ناشم در میاریم بعد تقطی هم میکنیم مثلا در میاریم فعولون مفایلون فعولون مفایلون فعولون مفایلون فعولون مفایلون, فعولون مفایلون تقطی هم کردیم همه کار انجام دادیم ما هرچی فکر میکنیم فعولان مفایلان،, مفایلان چه بحری بود؟ بحر کامل بود؟ بحر بسیط بود؟ بحر طبیع بود؟ بود، یادمونم در واقع همه زحمتی که گذاشته بودیم که یا آخر وزن شعر رو بفهمیم و بحر شعر رو بفهمیم بی اثر شد برای اینکه شما بحر شعر رو تو ذهنتون بماند هر خرکونم از این بحرها رو یه کلید براشون ذکر میکنه که این یه بیت رو حفظ کنیم. وقتی این بیت آدم حفظ باشه دیگه یادش نمیره. اون بیت رو متذکر میشه و به شعر براش مشخص میشه. این به خاطر حمید. الان نگاه کن طویل لهو بین البحور فضایلون فعولون مفایلون فعولون مفايلون یعنی الان اگه همون تغییرون در hub و این بهایرون فضایلو رو تقطی کنید اون بال وزنشو نوشته میشه فعولون مفایلون فعولون مفایلون مفایلون یعنی مفایلون اون خودش یه تغییراتی توش افتاده شده مفایلون که میفهمید خب یعنی فعولون مفایلون فعولون مفایلون این وزن فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان وزن بهره طویل طویلان مقتداست تفتیم من بکنم طویلان لحو و این البهوره فضایلو رو که شد فعولان مفایلان فعولان مفایلو اعرابش رو هم میگیم مبتدا خبر غیره که شما دیگه کاملا این بیت رو بتونید تو ذهنتون داشته باشیم تو خیلی مواقع حتی ما که امتحان هم دیدیم سوال که میدانیم بعد یک نفر میدی یک ساعت شسیم میگید راست چی نشستی چی همه چی رو نوشنم فقط این تیکه آخری که در اومده فعول و, مفایل و این چی بکنون بحر بحر بسیر بود یه نصف خط طویلان مقتدان لهو بین البهوره بینه اضافه شده به البهور این لهو بین البهور خبر مقدم لهو و بین متعلق به یه ثابتت موجودتان خبر مقدم فضائل مقتدانی معخر این جمله لهو بین البهوه فضایی این جمله خبر مقتداس مقتداس چی بود تابیلون مثلاً که بگیم زیدون لهو مالون زیدون میشه مقتدال لهو مالون جمله میشه خبرش لهو خبر مقدم مالون مقتدای ما هست جمله خبر زید تابیلون لَهُو بَيْنَ الْبُخُورِ فَزَائِلُو فَعُولَنْ مَفَائِلُنْ فَعُولَنْ مَفَائِلُنْ پس یه بحر رو از این پونزه شونزدر بحر ما یاد گرفتیم بحر طویب وزنش فعولون مفایلون فعولون مفایلون فعولون مفایلون فعولون مفایلون نگاه کنید خصوصیات این بحر رو شروع میکنه به بیان کردن که اینها چیزاییه که شما باید یاد بگیرید تا انواع بحر رو بتونیم براتون بخونیم. میگه وحبوه منالعبهور شائع اتف شعر العربی به کسرتن به کسرتن یعنی معکسرتن یعنی کسیرن حال است. میگه وحبوه منالعبهور شائع اتف شعر العربی این از بحرهایی است که شایع هست در زبان عربی این از بحرهایی است که خیلی شایع واقعا اینطوریه ها یعنی شما الان برید معلقاتتون مثلا صعر رو همون بیت اولش رو بردارید تختی کنید ببینید چند تا از این معلقات صعر بحر تفعیل هستش این از است که شیوع دارد به خاطر همینم چون کسرت شیوع داشته اولیه چون معمولا اون که زیاده من که بیشتر استفاده میکنن ازش اولویت خب قولویت داردن بهتر یاد بگیره دیگه و قبط به این بحر طویل به نرعب خور شاععت از است که شیوع دارد در شعر عربی زیاد خوبیه. و ممزوج من تفعیلتین مختلفتین و این به از دو تا تفعیله مختلف تشکیل شد ولی کنون دو تا فعولان و مفاعیل دو تا تفعیله از تفعیله های اصلی یکی فعولان و دیگری مفایلان اینو تشکیل داده این هم دو تا و هما فعولان و مفایلان و این دو تا تفعیلی هم که اینو تشکیل میده فعولان هست و مفاید و یه تعلف خصوصیت صرف و یه تعلف همه سمانی تفعیلات یک بیت این از هشت تفعیله تشکیل شد چهار تا مسرای اول یعنی صدر بیت چهار تا مسرای دوم شطر دوم یعنی اجازه بیت فان مفاایان فولان مفاایان صد به فاولان مفایلان فولان مفایل این هم اج و, و به زمانی علی ال نحوه تیبهشه که که می بینیم فان مفاایان اینجا اون که مهم است که برای این بهر و باید به ذهن سپرده میشه یعنی اگر این رسمت رو آدم بدونه این بهر رو اگر بیتی ازش به دستش برسه میتونه تشخیص اون رو کامل داشته باشه اون چیه از تغییرات و لطی تغییراتی که تو این بهره تغییراتی که مختص بهره طبیعه این همون اعلال و ابدال و اتقامیه که مثلا در سر ماله عجوه مگفتیم این اعلال توش میشه این ابدال میشه این اتقام میشه این خصوصیات رو داره شما یاد میگرفتید فیله عجوه و این همه این همونه قبلا براتون گفتم، این تغییرات رو با خاطر سکن بعدم یادتون باشه ما گفتیم تغییرات دو جورن گاهی زحافن گاهی عللن گاهی زحافه زحافات گاهی خاصن علل علت اگر یادتون باشه زحافی خصوصیاتی داشت درست شد به دومین حرف سبب داخل می شد مثلا لزوم بر شاعر نمی آورد علت مثلا هم به عروض داخل میشد هم به ضرب اما زهاف هم به هش می آمد هم به ضرب هم به عروض این فرقها رو به طور مفصل خوندیم حالا اون دوتا چیزی که تغییر ایجاد میکنه یکی زحاف و یکی علت توی بحر طویل از کدوم نوعشه مابحثی است که اینجا باید به خاطر بس از تغییرات ولتی تطرعو. تطرعو یعنی تعرض و آرز میشه تعتری وارد میشه تطرعو علاها زر به تغییراتی که بر این بهر شما وارد میشه و میبین پس بنابراین ما الان می‌خویم زهاف و علتی رو که در این بهت هست بفهمیم. خب اینکه ما چجور به قول خودمون وزن تفصیلی رو تشخیص میدیم خب تقدیم میکنیم دیگه وقتی که مثلا نگاه کردیم به علامات این که جلسه قبل گفتیم دیگه که مثلا یه دونه یو در آمد. دو دوتا خط تیره در آمد. خب چی ازش می‌فهمیدیم فهمیدیم؟ فعوله. این به این شکل هستش که ما وزن رو تشخیص میدیم درس قبل و مفصل هم بحث کرد خب نگاه کنیم زهاب قبل الان داریم یکی که همولان رو تکرار زهاف القبض پس زهاقی که داخل میشه به بهره تویر جند زهاقی زهاف قبض پس این دور شد بحر تویر فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن نوع زهاقی که داخل میشه زهاف قبض حالا زهاف قبض چیه زهاف قبض چی و وهو حذف حرف الخامس از ساک نمنع حذف حرف پنجم که ساکن هم هست از تفعیل حذف حرف پنجم ساکن از بگید تفلد. حذف حرف پنجم ساکن از تفعیله رو بهش میگن زحاف قبض حالا نگاه کنیم ما اینجا دو تا تفعیله داشتیم دیگه یکیش چی بود فعولان و دیگری مفا ایلان حالا فعولان فعولان هزف حرف پنجامشون نونه نونه حالا اگر حرف پنجم بیفته فعولان تبدیل میشه به چی؟ فاولو فا پس اگر توی این بهر ما به جای فعولان فا فاولو دیدیم یعنی دیدیم فاول فا و میگیم می این اولی چی شده؟ زهاف قرض شده حالا ما فا ای لون. ما فا اگر نگاه کنید پنجمین حرفش مفا ای او یای ای یا اگر حذف مفا ایلون میشه چی؟ مفا ایلون مفا ایلون پس اگر به جای مفا ایلون مفا ایلون دیدین اگر به جای مفا مفا اعلان دیدیم میشه چی؟ بگید زحاف قبض اون که ساده بودیم زحاف قبض تصف حرف پنجمه ساکن است از تفعیله فعولون و از تفعیله مفا اعلان شد؟ نگاه و خب هزف حرف الخامس از ساکن مندد و و نمایت خدا علا فعولان ببین که الان چه جوری نوشته شده فعولون یه دونه یو دو تا خط تیره بود چشممون عادت کنه هر کدوم از اون خط تیره ها دو تا حرفه خب میشه چهار تا یه دونه هم اون یو 5 پنج تا پنجمیش میشه اون حرف ساکنه آخر ما ایلان اون نونش حذف میشه خب حذف میشه غیر و هاین الفعولون فعول درست شد موشه فعول لا. و کذایت خلالا مفا ایلان, مفا ایلان رو ببینید یه یعنی این یو خط تیره دوم خط تیره دوم دومین حرفش هست میشه و یغیر و هایلان مفا ایلان. و توسن با حالا اگر یه موقع ما تقتی کردیم در اومد و یا مفائلون به جای فعولون و مفائلون زیر این چی می زیر این می مقبوزه مقبوزه یعنی اونی که زحاف قبض داخل شد و تو ما از تفعیلت و دخل علیها حاضر زحاف و مقبوزه؟ اون تفعیلهی ای که این به اشتاخل شده بهش میگن چی چی؟ مقبوزه مقبوزه جدی رو به ذکر شایسته است که شما بدونید، ان هافل قبض زهافون لازمون همه اول اولش یه دونه با قول خودمون خارج از قاعده باید حفظ کنیم. اینجا زهاف جاری مجرای علته زهاف جاری مجرای علت یعنی واجبه یعنی شاعر اگر شاعر اگر مرتکب زهاف شد باید ادامه بده باید شد ول و به ذکر زهاف القبض زهافون لازمه. اما کجا این زهاف قبض تو فعولون بیاد فعولون تو هشفه مفایلنش که بیاد اون مفایدون باز یکیش تو حشفه وسط بیتی یکیش تو عروض زربه میگه نه خب معلومه اونی که اعدامه پیدا میکنه تو زرب و عروزه. میگه ولجدی رو به ذکر انل زهافل غرز زهافون لازمون جاری مجرد علت لازمه فی عروز انواع در عروز انواع این بهر لازمه یجری مجرد علت جاری مجره علت میشه درست الان نگاه کنی کلیده این بحر رو که با هم خوندیم طویلان لهو بین البحوره فضایلو وزنشو که مقابلش نوش فعولان مفایلان فعولان مفایلو این مفایلو که اشباه کرده مفایلو یعنی همون مفاعلن فرقه نمیکنه دیگه چه بگی الو چه بگی ایلان یکیه الان اون چهارمین تفعیله که جای فضایلو هستش چی اومده؟ دو. عروز رو ببینید عروز رو زحاف داره اینجا ادامه هم پیدا میکنه درست شو؟ عروز آخرین تفعیله سطر بود که همی جایی که فضایلو هستش همینطور ادامه پیدا میکنه میگه الجدی رو به ذک ان زهها فلقم لازمون فی عروز و هال و یجری خوب این و شد تو شو چیزی نخوندیم این شد مفاعیلن که چهارمین تفعیله است که در بیت ما داریم و در صدر چهارمی میشه و اونجا رو بهش میگن عروز شاعر برش لازم است اینجا زهاف داخل کنه زهاف قبضم داخل کنه مفاعیلن رو بگه مفاعلان و اگر اینجا گفت مفاعلن گفت باید ادامه بده باید ادامه بده ولجدی رو به ان زهاف الف قبض زهافون لازمون اگر داخل کرد اینجا زهاف رو درشو باید ادامه بده فی عروز انوار حاضر بر یجری مجمله نه الا فی البیت المسرر مگر در بیت المسرر بیت المسرر چی بود با هم خوندیم؟ بیتی بود که اگر یادتون باشه هم توی مصرای اول یعنی صدر هم تو مصرای دوم یعنی عجز داره قافیه بود اینو میگفتن بیت المسرر حالا گوش کنید گوش کنید اگر یه موقعی ما بیت مسرع داشته باشیم یعنی هم مصرهای اول قافیه داره حرف روی داره هم مصرهای دوم، هم میشه هم میشه هم میشه بروش شو عروض بیت تابع زر بشه همیشه عروض بیت تابع بگید زر بشه یعنی تفیل چهارم تو اینجا تابع تفیل هشتم حالا گوش گوش. اگر یه موقع اگر یه موقع هشتم سالمه یعنی زحاف قبض بهش داخل نشده. شاعر ما اونجا گفته مفاعیل انتخاب نکرده. زهاف انتخاب نکرده اونجا همون مفیل گفت. خب عروس هم میشه باز چی بگید بگیرید؟ اونجا دیگه زهاف قبض به عروض داخل نمیشه ما گفتیم عروض این بهر زهاف داخل میشه به جای مفایلون میشه مفایلون اینو گفتیم و این لازم هم هست میگیم یه استثناء داره مگر جایی که عروض اون بیت تابع ضربش بشه و ضرب ما بگید سالم باشه ضرب ما دارای ذهاب نباشه اونجا عروض دیگه مفاعلان نمیشه میشه مفاعلان تابع زربش میشه الا فل بیت چرا؟ این و یعنی زیرا فا این تفعیلت الاروز فا این تفعیلت الاروز تشفه تفعیلت از زرب بی زیرا تفعیل عروز در این بیت شباهت میرساند به تفعیله زرب در همه انواعش در همه انواع شهر درست شد ما می بینیم که عروض تابعه بگید ضربه در بیت مسرف در بیت مسرف پس زهافی که تو این بیت تو این بحر ما داریم زهاف غبضه و اون عبارت است از حذف حرف پنجم ساکن از فعولان هست بشه میشه از مفاعیلون هست بشه میشه مفاعلو و این تفعیلی که این بهش داخل بشه این زهاف بهش میگن مغبوزه شایسته ذکرم هست که ما بگیم زهاف قبض اینجا تا جاری مجرای علتت لازمه که شاعر دامش بده اگر توی عروض شعر بیاد یعنی تو عروض شعر لازمه که ادامه مگر در جایی که بیت ما بیت مسرب باشه اونجا عروض تابع زرق میشه اگر ضرب زحاف نداشت این هم نخواهد داشت چرا؟ چون همه جا عروض در بیت مسره تا به زرب. کل بحث همین بود اینو ما دوباره تکرار کردیم برای شما دید. حالا اگه بخواید با علامت بنویسید میشه مثلا یک خد خب آیا علت هم داخل میشه؟ میگه بله یه علت هم داخل میشه علت الحذف علت حصف هم به بهر طویل داخل میشه وحیه علت حذف چیه؟ و هیه سبب خفیف من آخر تفعیلت زرب حذف سبب خفیف از آخر تفعیله ضرب ضرب میشه اون تفعیله هشتم یعنی مفایلون هشتم مفایلون حذف کنیم سبب خفیف آخر رو یعنی مفایلن الان نگاه کنید توی اون علامتی که داره یه یو سه تا خط تیره خط تیره سوم حذف بشه خب بشه چی فاولن یعنی به جای مفایلن هشتم ما داشته باشیم بگید فاولن یعنی به جای مفایلن هشتم داشته باشیم چی؟ فعولان و یه هزف و سبب خفیف من آخر تفعیلت زد فتصبه و مفای مفایی ما مفاعی نداشتیم توی وزنهایی که بگید خوندیم به عنوان وزنهای اصلی و بعدشم وزنهای فرعی که از روی ساختیم شوی ما مفایی نداریم برست شد و تکتبو درستی شد مفاعی اون لونش حذف شد این مفاعی رو برای آموزش نوشته و تکتب و فعولان دیگه میگیم فعولان دیگه بهش نمیگیم مفاعی بگیم مثلا فعولن مفائیلن فعولن مفاعی نه فعولان مفائیلن فعولان فعولان اون چهارمی تو مصر دوم میشه فعولان و توک تاب و تو فاولن و توسم معتفعیله تلتی دخلت علیها هاذه العلۃ محذوفا اون تفعیله‌ای که این بهش داخل بشه بهش میگن چی محذوفه باشه پس ما یه زحاف قبض داریم که اون تفعیله‌ای که بهش داخل بشه بهش میگن مقبوزه یه علت حذف داریم و اون تفعیله‌ای که بهش داخل بشه بهش میگن محذوفه علتمون این بود که در ضرب داخل میشه و مفایلان رو تبدیل به فعولان میکنه مفایلان رو تبدیل به فعولان زهافمون، گفتیم پنجمین حرف ساکن رو هست میکنه فعولان رو فعولان میکنه مفایلان رو مفایلان میکنه و گفتیم این زهاف جای مجرای علته درست اگر در عروض بیت شاعر انتخاب کنید و باید ادامه بده مگر در بیت مصرر که عروض تابه ضرب میشه این کل دو تا تغییراتی بود که بود حالا پس طویل فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان این طویل طویلان بهو بین البحور فضایل دوتا تغییر توش هست ذهاب قبض علت هست. ذهاب قبض که بیاد میشه مقبوزه علت حذف که بیاد میشه محضوفه ذهاب قبض پنجمین حرف ساکن هست میشه فعولون و فولو، مفایلون مفایلون علت حذف سبب آخر از ضرب حذف میشه سبب آخر ما مفائلون میشه فاعولون كله تا اینجا کنیم رو ببینید من به طور خلاصه تکرار می‌کنم تو باید حفظ کنید منم بعد حفظ کنم شما هم بعد حفظ کنید یاد گرفتید ما اینجا یاد دادیم به شما رموزش هم گفتیم تا آخر بیت هم یاد هر موقع حفظ باشی بهر طویل و بلند یادت رفت دوباره بخون حفظ کن باید حفظ بشی تکرار کنید تکرار کنید یه بیت دو بیت درست چیزی نیستش که دیگه بیا خب حالا نگاه کنید انواع بحر تویل بحر طویل چند نوع انواع بحر طویل. یعتی بحر التویل تام بحر ما تام داریم درستو یعنی غیر تام نداره غیر تام یادتون هست بود دیر تام مجزوع بود و مشتور بود و منهوک تام مونی بود که هر هشتا تفعیلش باشه فعولون مفایلون فعولون مفایلون فعولون مفایلون فعولون مفایلون, مفایلون. مجزو یه جزش میافتاد مشطور مشتور نصفش میافتاد منهوک دو سفومش هست می شود اینا با هم خوندید این فقط تام داره و راحته یاد داره یعتی بحر طویل تام لهو سلاست و انواه سه تا نوع هم داره درست پس بحر طویل فقط نوع تام داریم سه نوع هم هست لهو انواه لهو سلاست و انواه مشهور و سه تا نوع مشهور داره فشعر العرب یک دو و سه نگاه کنید یکش میگه طویل صحیح طویل صحیح دوش رو میگه طویل مقبوز سهش رو میگه طویل محضوب خب اقلانی هم هست ما یه زهاف قبض داشتیم که ادامه میدادیم خب این باید بشه یه قسم که اگه زحاف قبض بشه یعنی شاعر زحاف قبض رو انتخاب کرده خب دندش نه باید تا آخرم ادامه بید یه شاعر دیگه علت حذف رو انتخاب کرده اونم دندش نه باید ادامه بود. یه شاعری هم هست هیچ کدوم این رو انتخاب نکرده خب بحرش طویل اونم باید بحر طویل صحیح رو ادامه بید که صحیح یعنی اینکه که نه زحاف قبض که جاری مجرای علت بود توشه نه علت حصف توشه صحیحش اینه مقبوز یعنی ذهاف قبض توشه محظوف یعنی علت حذف توشه پله عقلانی شد دیگه تفصیل شد, شد. پس طویل صحیح داریم تویل مقبوز داریم و تویل محذوف داریم طویل صحیح کدومه؟ اونیه که زحاف قبض و علت حذف توش نیست حالا میگیم کجاش نیست زهاف قبض داخل شده و شاعر باید ادامه بده میشه دومی تعویل مقبوس علت حذف داخل شده و شاعرم باید ادامه بده این انتخاب کرده میشه سومی میشه تعویل محذوب خب پس نگاه کنید یک یک الطویل صحیح طویل صحیح ماکانت و هو ما كانت تفعیلتو عروضه مقبوزه تفعیله عروزش مقبوزه است او دقت کنید عروز مقبوزه است یعنی چی یعنی فعولن مفاعیلن فعولن مفایلون اینجا مفایلونه تو چارونی خب فعولون مفایلون فعولون مفایلون. تو صدر بیت تفعیلی چهارم که بهش میگن عروض مقبوضه مفایلونه و ما ماکانت تفعیلت و عروضه هی مقبوضه مفایلون اینو فالمثرب مگر بیت بیت مصرب باشه که اونجا اگه بیت مصرب باشه عروض تابه ضرب میشه ضرب هر میخواد باشه باشه این تابعه اون میشه اما و وتفیلت ضربی الا مفایلون اما تفیله ضربش صحیحه یعنی تفیل هشتم صحیحه میشه مفا ایلون پس اگر یه بیتی داشته باشیم که از این صحیح باشه بیتی داشته باشیم صحیح باشه که و وزنش هم بیت مسرع نباشه چه جوری میاد؟ این میشه فعولن مفایلن فعولن مفاعلان مفایلن دوباره مثل دوم فعولان مفایلن این میشه طویل صحیح فاعول مفاعیل فاعول مفاعیل فاعول مفاعیل فاعول مفاعیل تفعیل چهارمش ما حالا یه نفر میگه, میگه این چهارومی چهارومی که توی عروض مفاعلن شده مگه اضافه نیست میگیم بله میگه مگه ادامه پیدا نمی‌کنه میگیم بله ادامه پیدا میگه بچه‌ها میگید صحیح میگیم معیار برای صحیح یا مقبوض بودن که دومین نوعه یا محذوف بودن تویل که سومیه معیار برین زر بشه یعنی تفعیل هشتم این تفعیل چهارم نیست چرا چرا چرا به دلیل اینکه تفعیل چهارم تو هر سه قسمش تفعیل چهارون تو هر سه رسمش مقبوز هست این دیگه فرق نداری که الان دومی رو نگاه کنید دوبامی تفعیل میگه خوبه ماکانت تفعیلت و عروضه هی هست این هم تفعیل عروضش مقبوز هست رو ببین تفعیل محضور خوبه ماکانت تفعیلت و عروضه هست پس اگر مسراء اول رو ما تقطی کردیم در اومد فعولون مفایلون فعولون مفایلون در اومد مفا... آیا میتونیم بگیم طویل چیه؟ نه این مثل اول تو هر تاش یه جوره هر سنون فعولون مفایلون فعولون مفایلون یه جوره هر عروزش مقبوز است. پس اینجا نمیشه تشخیص بدیم طویل محضوفه طویل مقبوضه طبیل صحیح کدومه اما مصره دوم رو که تقطی کردیم اون تفعیله زرب اگر صحیح در بیاد بشه مفایلون میشه طبیل صحیح اگر مقبوز در بیاد میشه تویل مقبوز اگر محذوف در بیاد میشه طبیل محذوف درست پس مصره اول در هر ستا در هر ستا یه جوره و آخرین تفعیلش هم مقبوزه است این نمیتونه فرق باشه مصرهای دوم در ضربش فرق است اگر تفعیل چهارم مصرهای دوم درست شد تویل چهارم اون تفعیل چهارمه مصرهای دوم که بهش میگه زرب مهشتومی آخری اگر او صحیح درآمد آمد میشه صحیح مقبوز در آمد میشه تویل مقبوز محظوف در آمد میشه تویل محضوف شاعرم باید ادامه بده و الا اول در هر ستا یه شکل است به همین دلیل ما وقتی مصرای اول رو تقطی کنیم نمیتونیم بگیم که این بیت از چه نوعه فقط میتونیم بگیم طویله حالا تویل محذوفه، تویل مقبوضه، تویل صحیحه نمیدونم. مصرع دوم رو که تختی کردیم، ذرب بیگ به ما میگه که شاعر از کدوم نوع انتخاب کرده. حالا مثلا یه نمونه بگید. یه بیت شعر دیدیم، تختی کردیم. اومد فاعولن مفاعیلن فاعولن مفاعیلن. میگیم چیه؟ میگه میدونم بهره طویله. میگیم از کدوم نوعش میگه نمیدونم، مشخص نیست. به مصرع دوم رو بده. دوم رو میدیم در میاد توبلون مفاول تفاولات مفایلون مفاول تا اونجا مفایلون در میاد میگه ها این طویل مقبوزه میگیم چرا میگه چون ببین چون ضربش مقبوز در اومد حالا اگه محذوف در میاد طویل محذوفه صحیح در میاد طویل صحیحه خیلی راحت شد یعنی چیز اصلا سختی نیست طبیل صحیح و هو ما تفعیلت و عروضی مقبوزه تفعیل عروضش مقبوزه است مگر در بیت مسرد و تفعیلت و زرده هی مثل چی؟ مثال میزنه نه و قول عفیف از نه و قول عفیف تلمسانی نه و قول عفیف تلمسانی معان صوفی این شعر در شعرهای صوفیانه و به قول خودمون شعرهای است آمده و این دو بیت رو گفته الان نگاه کنید. کنید به دو بیت ببینید آیا بیت اول که شما دارید نگاه میکنید دارای بیت مسرح هست یا نیست فما اغنا الا معنا پس یه نیست اغنا معنا بهت بهت یا آخرشون یه شکل دو تا قفیده یکی دو پس اینجا عروض باید تابع بگید زرب بشه یعنی فما اغنا باید تابع الا معنا بشه درست شو؟ گرچه عروض این بیت همیشه بگید مقبوض است ولی اینجا تو بیت اولش باید تابع زربش بشه اما بیت دوم نگاه کنید به رب نداره نداری دوشو یعنی نانه نیامده که به صلاح آفیه داشته باشه اما بتناچی هاش اونجا بده اون ادا بده الان این بیت ای اولش بیت مسرعه عروزش تابع ضربش میشه درست شد عروزش تابع بگید زربش. از بیت دوم از بیت دوم میشه مفاعلن ضربش میشه مفاعیلن عروزش میشه مفاعلن ضربش میشه, میشه, میشه بگید مفایلان الان میتونید این بیت رو بدون اینکه که حالا اصلا ما نگاه کنیم بخونیم یا غیره با توجه به اینکه بیت مسرح هستش وزنش رو بگیم من میگم بیت اولش این در میاد فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان هم مصرای اولش چهارتاش صحیح مصره دوبام هم چهارتاش صغیح چرا؟ چون بیت مسلم ف Robin Robin how to how to how اما بیت دوم دوفا. بیت دومش اینطوری در میان فاولان مفایلون فاولان مفایلون اینجا مفایلون در میاد دو عروض چرا؟ چون اصلا در بیت طویل در بهره طویل در عروضش مفایلون مفایلون اما مثل دوم بیت دوم این در میاد فاولان مفایلان فاولان مفایلان پس این شد فاولان مفایلان فاولان مفایلان فاولان مفایلان فاولان مفایلان این بیتر اول که بهد مسلاحه فاولان مفائلان فاولان مفایلان فاولان مفایلان فاولان مفایلان میani مثل دوم به Doc این روش میگونت حالا اگر مثلا بیت پنجاه هم این رو بگن بهمون بگو چه جوری باید شاهر بگی بیت پنجاه اینطور میشه فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان تا آخر پس بیت اول که بیت مسرع بود عروز تابه زرب شد از بیت دوم عروزش مفایلان ضربش مفایلان رو دیگه تا آخر دیگه این میشه طویل بگید صحیح طویل صحیح حالا چرا بهش گفتن صحیح چون شاعر زربش رو مفایلان انتخاب کرده شاعر زربش رو مفایلان انتخاب کرده خب حالا این شعر رو بخونیم میگه که وقف لا علل مغنا من فما اغنا ولا دلت الفاظ ذم علا معنا و رقنا الان میگه ما نیستادیم بر می میکده مم. میگه ما برون خانقاه و میکده خود سالها وقوف کرد مدتها خاک در میکده رو خوردیم قدیم در گذشته فما اقنا چیزی گیرمون ندارم فما اقنا نا فایدهی بهمون مون ندارم سالها خاک در میکده رو ما خوردیم و چیزی نصیب نشد ولا دلت الالفاظ یه سری الفاظی رو اونجا یاد گرفتیم الفاظ سوفیانه یه چیزایی یاد گرفتیم اما ولا دلت الالفاظ و منو. الفاظی که از این مغناه مختیم دلالت بر معنا بر ما نکرد ما از این با قول خودمون میکده بیزار شد سالها اینجا بودیم چیزی گیرمون رو و قفنا علال المغنا قدیما فما اغنا یعنی فما اغنا مغنا مقنا قایلش برمیگرد به من و لا دلت الالفاظ منها یعنی از این مغنا علا من میگرفتیم اونجا یک سری با قول خود ما اوراد و یک سری از و و اینجور چیزها یاد گرفتیم اینا رو تکرار کردیم ولی خب طرفی نبستیم و کم فیه عمسینا چه روزهایی رو ما اونجا گذروندیم کم فیهه امسینا و بتنا به با بات یبیتو و بیتوته کردیم داره. یعنی چه روزها و چه شبها رو اونجا ما گذروندیم حیارا حیارا یعنی متحیر بودیم گیج بودیم گیج رفته بودیم گیج هم مونده بودیم چه روزها و چه شبها که ما اونجا با از و اوراد بودیم ولی چیزی گیرمون نیامد و بتنا به ربعی هیار و اسفحنا هیارا گشتیم متحیر و گیج کما بتنا روز گیج بودیم همونطور که شب بیتوته میکردیم پس که سالها ما خاکدر این میکدر ای رو خوردیم و یا آموختیم چیزی گیرمون نیامد و روزها و شبها آنجا گذراندیم همانطور متحیر که بودیم و به یقینی نرسیده بودیم و وصولی پیدا نکرده بودیم بر همون عدم وصول و همون عدم سلوک باقی مانده بودیم حال به خب زحمت مخواد یا ما زحمت میکشیدیم هنوز به نتیجه نرسیم. و کم فی هم سینا و بتنا به رویهی حیارا و اسبهنا حیارا کما بتنا خب این پیت رو ما با هم دیگه خوندیم حالا میخواییم اینو تقدی کنیم اول الان اینجور که خوندیم این کتابت اعتیادی بود که املاع عادی بود حالا نگاه کنید مصره اول و املاع چی میکنه؟ املاع عروضی نگاه کنید و کا نا ا ل مق نا و ک نا ا ل نا ق من نون قدیمی من ف ما عق نا و نا دل ل تل الفازو من هو الا این بیت اول هر کدوم رو به قول خودمون بخش بخش کردیم و نوشتیم حالا اون نوشتن بخش بخش بخش بخش, بخش این املاع عروضی بود این مرحله دوم کارمون خب این هم کردیم بخش بخش بخش خوندیم به این شکل نوشتیم مرحله سوم کارمون اینه که این رو بیایم رمز گذاری کنیم مثلا و چون یک حرف متحرکه یو گذاشتیم قف نا چون هر کدوم یه متحرکه ساکنه یه بخشه خط تیره گذاشتیم همینطور کل بیت رو رمزگذاری کرد این مرحله 3 پس مرحله اول نوشتن شعر مشکلی عادی بود نوشتیمش خوندیم مرحله دوم اون رو ما املای عروضی کردیم نوشتیم مرحله سوم رمزگذاری کرد مرحله 4م سخت بشه اون مرحله یکی میایم اینا رو با چشممون تقدیر میکنیم بعد دیدیم یه دونه یو دو تا خط تیره گفتیم فاعول بعد دیدیم یه دونه یو سه تا خط تیره گفتیم مفایلون بعد دوباره یه دونه یو دوتا خط تیره گفتیم فعولون یه دونه یو سه تا خط تیره مفاعیلن بعد اینا تختی کردیم شد فعولون مفایلون فعولون مفایلون بعد نگاه کردیم دیدیم هیچ کدوم اینا شکستگی ندارند فعولون سالم مفایلون سالم فاولن سالم مفاولن سالم زیرشون رو سالم سالم سالم سالم هستن همشون. این مصرع اول یک نفر سوال میکنه میگه این فاولن مفاولن فاولن مفایلون او وزن چیه میگیم بحر طویله میگه خب این سماع مگه عروز بیت نیست میگیم بله میگه مگه عروزش همیشه مقبوزه نبود اینجا چرا سالم اومده؟ میگیم ها این فما اغنا اگر روزش سالم اومده تابع زربش شده حتما زربش هم اینجا سالم در میاد و بیتش بیت مسرعه گرچه ما هنوز مثل دوباره ندیده باشیم میگیم این حتما بیت مسرعه و اروزش تابعه بگید شده اروزش تابه زربش شده مثل دوم رو تختیل میکنیم ولا دل لطل الفا زمن ها الا معنا ولا دل همون رمزگذاری کردیم و تختیل کنیم شد فاول. لطل الفا شد مفایدون اینم سالم اما نگاه کن زمن ها این پنجمین حرف ساکنش افتاده گفتیم بهش میگه زحاف قبض ولی زحاف قبض تو هشف اومده وسط بیت این قابل ادامه نیست اینجا شاعر نیاز پیدا کرد استفاده کرد یه بار مصرفه ممکنه تو بیت بعدی اینجا فعولون اومده بود. درست شو؟ ما گفتیم زحاف قبض در عروض این بیت جاری مجره البته نه در هشفش اینجا اومده بیه. علا معنا مفایلون الان نگاه کنید زیر اولی نوشتیم سالمه زیر دومی مفایلون سالمه سومیم نوشتیم مقبوزه فهم تشریح شدیم که این ضعف قبض داره مقبوزه است چهارمی هم مفایل سالم است این بیتون بیت چون بیت مسلعه عروضش تابه بگید ضربه شد حالا بیت دوم دیگه بیت مسرنی نیست حتما عروضش میاد مفاعیلن عروضش میاد مفاعیلن مقطوعه اما ضربش میاد مفاعیلن سالمه و به همین دلیل هم بهش گفتن سالمه دیگه تا بیت صدام اگر صد تا بیت هم گفته همه هم وزن بیت دوم ما خواهند چون دیگه بیت مسرح نداره میشن تابعه قانون خود بحر طویل قانون بهره طویل اینه که تفعیل چهارم م تفعیل 4م چهارم باشه به جای مفایلن مفایلن باشه نگاه کنید و فی فعولن ه ام سینا ه ام سینا سالم است و بت نا سالم است اما نگاه کنید به رب اهی به رب اهی مفایلون مبوز است اینجا تابع به قانون بهره بهرطویر شد و عروض بیت مفایلون آمد دیگه تا آخرم هم همینطور تو اینجا عروض مفایلون به رب اهی مفایلون حیارا فعولون سالم است و از بحنا مفاعیلن سالم است طیا را سالم است کما بتنا سالم است پس این شد نوع اول از بحر طویل که طویل صحیح چون بیتمان اعتماد بیت, مان بیت بود تو بیت اولش، اون بیت مساله داده شد. بیت اولش، اروزش تابه زر به شد. ولی در بیت دوم، دیگه اروز مقضوز بود و مفعل. این دو تا بیت هم به این شکل در آمد: فاولان، مفعلان، فاولان، مفعلان، فاولان، مفعلان، فاولان، مفعلان. این بیت اول. فاولان، مفعلان، فاولان، مفعلان، فاولان، مفعلان، فاولان، مفعلان. بیت دوم تا آخر این طبیل صحیحه. حالا نگاه کنید چی میگه؟ این قلم ملاحظه بحثی رو که ما کردیم به عنوان خلاصه ذکر. الملاحظه فی هازه این الویت این اونی که شما دارید میبینید تو این دو بیت اینه ان ها فالقرز قد دخل علی تفعیلت سابعت من البیت الابر اینکه که زحاف به تفعیله هفتم از بیت اول داخل شده. یعنی فعولان شده بود فعولو. درست شد. که ما گفتیم تو به ادامه هم نبا، و الان تفعیلت الاروز در بیت سانی و در تفعیله عروز در بیت دوم هم داخل شده. به ربعهی که الان دیگه. این دو جا عروز در اینجا و هش تفعیله هفتم در بیت اول زهاف قبض داخل شده منال بیت الصاد و دخول او فی تفعیلت العروض لازمه اما توی تفعیل عروض که داخل شده واجبه لازمه یجب ان یتوید به شاعر شاعر باید مشخص بشه اما اونجا نه نه اینجا یه سوال پیدا میشه میگه مگر شما نگفتید که توی تفعیل عروز که داخل شده لازم و واجب شاعر به شایر بشه،, بشه میگه بله میگه بچه توش بیت اول مقید نشد میگه تو بیت اول چون بیت مسرع بود عروز تابع ضرب شد اونجا شاعر عروزش تابه به شده اون اگه بیت مسرر نبود اونجا هم میشد عروز ما ولی چون بیت مسرر بود عروض طبق قانون تابع زردش. بلن ما کان ال الاولو ال اول و مسرعن شابهت تفعیلت ال اروض از تفعیل زرد. تفعیله عروض مشابهت رسون به تفعیله زرد. نوع اولش تاموش. نوع دوام همینطور همی میخونیم. نوع سوام همینطور میخونیم. بهر تمام میشه با همه خصوصیاتی که داشت. طویل مقبوز بعد و طویل محظوف حالا طویل مقبوز چطوره طویل مقبوز الان شما میتونید بگید چطوره طویل مقبوز اونیه که ضرب بیت مقبوزه است یعنی به جای مفایلان شده مفایلان خب ضربش اگه مقبوضه بشه درست شد؟ عروزش هم که اصلا لازم مقبوزه بشه اونم میشه مقبوزه خب اینجا اگه بیت مسلم داشته باشیم و نداشته باشیم فرقی بگید نمیکنه حالا بیت مسلم باشه وقتی ضرب مقبوزه است عروزم تابع اون میشه میشه مقبوزه حالا ما اصلا گفته بودیم که این مقبوزه همیشه هست عروزش پس این طویل مقبوس یه وزن بیشتر نداره یه وزن بیشتر نداره چه بیت مسر نباشه چه نباشه یه دونست. شاعر از همه اول که قلمشو میذاره و شعر رو میگه اینطوری میگه فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان بده دمش برو یعنی از بیت یکش تا بیت صدش چه بیت مسرد داشته باشه چه نداشته باشه چی میاد فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان این راحت نه این بهرش تو بحر طویل این مغبوزش راحت تره دیگه با خودمون تغییر در اون. اون یکی بیت یکش که بیت مصرر بود با بیت دوش تا آخر فرق میکرد چون عروض تا به زرب میشد عروض میشد مفاییلون اونم مفاییلون بعد دوباره بیت بعد عروض میشد مفاییلون بیت میشد اون زرب میشد مفاییلون اینجا نه عروض زرب از بیت یک تا آخر همه یه جوره بیت مصرر باشه حالا اگه از شما سوال کنیم شما فکر میکنید تو بحر طویل نوع اول نوع اول بیشتر هست یا نوع دوم یا نوع سوم نوع سوم من باز فهم میکنه چون فراری که ضربش بشه محذوفه دیگه او با اون عروضش تو بیت مصرف فهم میکنه این وسعتی مقبوض از همه بیشتره چون شاعر راحت تر دیگه از همه اول که قلمو میذاره رو کاغذ هست این طور در میاد فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان،, مفایلان،, مفایلان میده دمش میره تا آخر هرچی بهت میخواد بگه بگه بیت مسرف اومد به زبانش اومد نیمد بیت عادی آمد بهت عادی خیلی مسرف فرقی نمیکنه شد حالا نگاه کنید اتویل المقبوز و هو ماکانت تفعیلت و عروزهی مقبوزت عروضش مقبوزه است مفایلانی همیشه این طوره. و کان زرب و حوک زربش و زحاف القبض فی هازن نو فی تفعیل العروض و ضرب لازمونی از شیم از شیم قبض در عروضش و در ضربش هر دو واجبه باید داره. حالا در عروضش واجبه چون اصلا بهره طویل عروضش مقبوزه است در ضربش واجبه چون شاعر خودش انتخاب کرده انتخاب کرده دندش نب تا آخره دامه بود چون اینجا زعاف جاری مجلویه اینکه میگه هم در عروض لازمه هم در ضرب در عروض لازمه چون بهره طویل عروضش مقروضه هست تو حسنوش در ضرب لازمه چون شاعر خودش انتخاب کرده خوند خودش انتخاب کرده و باید دامه تبیل مقبوز و خوبه ما کانت تفعیلة و عروزهی مقبوزه مفایلون و کانت زربهو کذالک و زهاف الفبزه فی هازن لوعه فی تفعیلة العروض و زربه لازمون یجری مزلیل و یجب و علش شاعره ان یلتزم بهی فی جمعی بیات القصیده شاعر لازمه که به این زهاف قبض ملتزم بشه در تمام عبیات در تمام عبیات و قصیده لازمه که نگاه که این همونیه که من گفتم و ها زن نوع من بحر طویل لهو قصائد و عدیده این نوع از بحر طویل طویل مقبوز قصایدش خیلی زیاده عدیده هست فراوان تفوق و غیرهو این قسم تفوق و برتری داره بر غیر این رسم یعنی رسم یک و سه چرا؟ چون راحت تره؟ مردم هرچی که راحت تره انتخابشون نسبت به اون چیه؟ بیشتره این راحت تره؟ بیشتر رفتن طرف این از همون بیت یک وزنش در میاد طویلون بهر طویلشی میشه فعولون مفایلون فعولون مفایلون فعولون مفایلون فعولون مفایلون. مفایلون تا بیت صدوم هر چقدر گفته همه همین رو دارد و ها زن نوع من بحر طویل لهو غصاید و عدیده تفوق و غیرهو و قول ازدلمارک مثل قول آقای ازدلمارک رسا زوجته زوجش از دنیا رفته بوده زنش مرده بوده در مرسیه یا او شعر گفته شعرش رو از بحر طویل انتخاب کرد بیمین رسا رو برده تو بحر طویل چرا چون مخواسته با بگه طولانی بگه بیت بلند باشه از بحر طویل انتخاب کرده درست شد اون معانی صوفیه چون مخواست خیلی شعر عرفانی به که مطالب بالایی رو بیاره بحر طویل انتخاب کرده بود در رسال زوجش که شعر گفته از بگید بحر طویل انتخاب کرده و بحر طویل هم نوع دومش طویل محبوس حالا نگاه کنید گوش کنید این دو بیتی که شما دارید میبینید بیت مسلح داره یا نداره تقطعا مدمعا داره یا نداره ار آ عین علم خافیه داره دیگه درس شد اما بیت دوم اول دهو و اوجعا وجعا داره قافیه درست شو حرف دردی اما اول دهو نداره اولی بیت مصری دومی غیر مصری فرقی نمیکنه دومی هم مصری بود صفرمی هم مصری هیچ گونه نبود این یه دونه وزن بیشتر نداره اینجا بیت مصری با غیر مصری فرقی نمیکنه چون وزنمون این میشه فاعولن مفاعیلن فاعولن مفاعیلن فاعولن مفاعیلن فاعولن مفاعیلن تا راحت هم هست میگه علی فی سبیل الله قلب تقطعا میگه آهای خدایا به داد برس در راه خدا دلی است پاره پاره تکه تکه قطعه یعنی برید قطعه یعنی تیکه تیکه کرد تقطیع که ما میگیم الان یعنی خورد خورد خورد خورد خورد گردن ریز ریز گردن تقطیه تقطعه مطاوعه قطعه قطعه یعنی تیکه تیکه تیکه, تیکه تقطعه یعنی تیکه تیکه شد پاره پاره شد آه. این تقطعه توشی زمیر و حوض برمیگده به قلب این جمله صفت قلبه جمله بعد از نکره میشه صفت چی میگه؟ میگه الافی سبیل الله در راه خدا خدایا به داد برس دلیست پاره پاره منظورش دل خودشا است تکه تکه شده میگه در این مصیبت دلی داریم تکه تکه شده و فادهتون خدایا به داد برس مسیبتیست فادهه ات به جای قلبان و مصیبتیست که این صفتو داره لم توبقه لحینه مدمعا مصیبتی است که جمله بعد از نکزه لم طبقه باقی نگذاشته للعين برای این چشم ما مدمعا اشکی پس گفت خدایا دلی داریم پاره پاره و مصیبتی که اشکی دیگه برای چشم باقی نگذاشته یعنی اشکی دیگه برای چشم باقی نگذاشته یعنی انقدر گریه کردیم چشممون خشک شده مصیبت پس دلی پاره پاره داریم و مصیبتی که اشک چشم ما رو خشک کرده از بس گریه کردیم لمتوبه ذمیر هیتوشه توبری بده مجنون برمیگرده به فاجعه للعین، ال عین یعنی چشم من، یعنی لعینی. مدمن مفعول لم یعنی دمعتم هیچ اشکی برای چشم ما باقی نگذشت. اصبرن وقد حل ترى من درور اینا تو نه خوندید که مفعول مطلق بعد از همزه استفهام و جای فعلش نشسته. یعنی اعصبه رو صبران، اعصبه صبران، یعنی آیا صبر کنم یعنی اعصبه رو صبران، آیا من صبر کنم یعنی چی؟ استفهام انکاریه این سبر میکنم نمیتونم صبر کنم آیا صبر کنم این واو واو حالیه است وقد حلت برا من عبد دهود و حالان که جا گرفته است حل یعنی سکنه جا گرفته از سرا سرا یعنی خاک از تراب افلام داره یعنی این قبر، این خاک این گور. قبر. قبری که جلوش بوده. فقطحل از سرا و حالان که جا گرفته از در این گور من کسی که ت دو دوستش میدارم. میگه آیا من صبر کنم دندور رو روزگر بذارم؟ در حالی که، آرمیده است خوابیده است در این گور کسی که من به او عشق میبرزم منظور همسرش دو تا نشته تو این نیوه بیت هست یکی ما صبرم بود که گفتیم یکی از جاییه که مفعول و مطلق جای فعلش میشینه تو موادی خوندیم یعنی بوده عصف و صبرم دومش اینه که بعد قد حل اثرا من عبده اثرا مفعول حل است من فائلشه و یاد اون باشه تو نهر میگفتش که اگر فاعل و مفعول اعرابشون مشخص نمیشه باید فاعل مقدم بشه مفعول بسهاره میگه زره به موسا, موسا و ایسا موسا و عیسی اعرابشون ظاهرم هر کدوم جلو افتاد اون زده زره موسا و ایسا موسا ایسا زده اینجا از سراه اعرابش ظاهر نمیشه منم ظاهر نمیشه ولی مفعول مقدم شده اونجا یه استثناء میزهش اگه یا میگفتش که مگر اینکه از نظر معنا بگید معلوم باشه اینجا اون شخص در خاک ساکن میشه خاک که در او ساکن نمیشه اونجا یه مثال میزد عکل یحیا الکم السرا درس شد؟ گلابی رو خورد، درست شد این عکل یحیی الکم اسرا میتونست بگه هکله الکمه سرا یهیاد چون اون کمه سرا که نمیاد دیر یهیاد رو بخوره. این مثل این نکته دوم که سرا اگر اعرابشم زارده میشه من اعرابی زارده میشه مقدم شده منبابه به قول خودمون اینه که از نظر معنا ما تشخیص میدیم کدوم فاعده کدوم من سوم مطلبی که میخوام بگم میگه من اول دهو اود دو فیل مزاره کسی که دوست می‌دارم او را شعر غزلی قشنگی بود. نمیگه دوست می حالا که مرده. کسی که من در طول حیات دوستی گه من عود و دوستش می فعل مزاره. یعنی الان هم که تو اون گوره ها محبوب و معشوق هم. شعر غزلی قشنگی گفته. نگفته من ودد تو رو دوستش می داشتم. گفته من عود دو نکته چهارم اینه که اگه یادتون باشه من محصوله رو بهش میگن موصول مشترک میتونه زمیر طبق لفظش بیاد مفرد مذکر میتونه طبق معنا بیاد محننس تصمیه چند هرچیکر هست اینجا هو برمیگرده به من در صورت که محشوقش محننس زنش بده میتونه بگه من اول دوها میتونسته بگه من اعبد هو هو گفته که برمیگرده به من چون لفظ من کرد. میتونستم ها بگه برگرده به من به اعتبار معنا اینجا رعایت لفظ کرده اصبرن وقد حلل سن و من فل الله فلله همون خدایا دلشوره است هم یعنی دلشوره ور داریم ما ش و او چقدر شدید است و دردناک؟ ما دلشور داریم نسبت به این مصیبتی که بهمون رسیده آه. هم مقعم می داریم چقدر شدید و چقدر دردناک؟ این ما ش ما افل و افله با تعجببه ما اشد و عوجه شده ما اوجه و اوجه که حد به جای شده یعنی ما اشد ده و اوجه او به قرینه افتاد و ما افلهو باب ترجمه یعنی چه شدید است چه دردناک است وجه یعنی درد چه شدید است و چه دردناک است فلله همون هم یعنی هم قم اینجا گرچه هم موقع با هم فرق داره کم قصه گذشته است اتفاقی که در گذشته افتاده شما نسبت به اون محزونید میشه کم کم میخواید مثلا شما فرض بفرمایید که نخوندید و در کنکور ممره نیاوردید ها الان دارید غم این رد شدن تون ولی یه موقع هم دارید هم یعنی امتحانی داری، کنکوری داری دو ماه سه ماه بعد ولی الان خوب نخوندی یا احساس میکنی نسبت به اون مسلط نیستی دلشوره داری نسبت به این همه پس میگن هم و نباشه یعنی نسبت به آینده نگران نباش غم نداشت یعنی نسبت به گذشته ناورد نباشه هم اینه همون ما اشد و او جواب یه ذره این بیت رو با اول خودمون صرفی نهبی باش کار کردن با باش کار کردن شما هم معانی و مفاهیمشو رو بفهمید همین که یه استراحتی نسبت به بحث عروض داشته باشید حالا خوندیمش نگاه کنید ببینید تفتیم میکنید الافی سبیل الله هقلبون تقد تا فعولون مفایلون فعولون مفایلون با اون که باب ما الان بیتمون در باب بیت مسرعه ما باش. چون عروض تابه زرد بشه زرد بشه هم خوب مسرعه. این شاعر طویل مقبوز انتخار تقد تا وفاده الان نگاه کن وفاده فعولا شده باش. اینجا تو هش مقبوضه اومد شاید اینجا یه بار مصرف استفاده کرد وفاد حتون لمتوب مفایلون قلل عی فعولون نمت ما مفایلون به اولش فعول مفایلون فعولون مفایلون فول مفایلون فعول مفایلون, مفایلون, مفایلون, مفایلون. اینطوری اومده فقط در تفعیل پنجم به جای فاعولون شده فعول و قوض فرزش داخل شده مغضوزه تو هشوام است پیش کار ند. دومی رو نگاه کن عصبرا فاول و وقد حلص مفاعیلن سالم است سرامن فاولون ۹۰ دهم مفاعیل مقبوض است. و بله بالا دیگه عروض بیت تا آخر مقبوس است. لا فاعول ما ما ما مفاعیلن سالم است. اشد ده فاعول اومد. باش بیاد مقبوزه اومده اما در هشمه یه بار مصرفه شاهر اینجا استفاده کرد و او جا مفایلون مقبوزه است اینجا باید ادامه بده اینجا رو خودش انتخاب کرده توی مصره اول رو بهر طویل کردنش گذاشته این دو جا زهاف قبض رو باید ادامه بده یکی در تقییل چهارون عروض و دیگری در تقییل هشتوم زد هشتومش رو خودش انتخاب کرده چارومش رو بعد گذاشته گردنش در بقیه جاهای یه مصرف میشه الملاحظو. حالا خلاصه الملاحظو فی هازه این اونی که ملاحظه میکنی در این دو بیت اونی که ملاحظه میکنی در این دو بیت فی هازه این البیت انلزه هافل قبض لازمه. اینکه که زحاف قبض در اینجا لازم است فی تفیل تل و زرب هم در تفعیل عروضش و هم در تفعیل زربش و غیر لازم لازمه فی غیرها اگر در جای دیگه آمده تو هش لازم نیست یه بار مصرف شاعر دستش رسیده استفاده کرده تو بیت بعدی اونجا استفاده نکرده نخواستم استفاده نکرد. درست ولی در این دو جا لازمه در عروضش خود بهره طویل همیشه مغروز است در ضربش چون خود شاعر انتخاب کرده در اینو به متسرع و غیر مسرع هم هیچ فرقی با هم ندارند هیچ فرقی با هم ندارند همیشه الانم هم من میتوانم چون دیگه یه فقط مانده که طویل محذوف باش. همیشه ما توی کلاس های حضوری که داشتیم این بهر رو به قول خودمون با حموزش که پای تخته می نوشتیم و ما اینجای تکرار کردیم به اینکه این اونجا دیگه می نوشتیم و خود شما که در حضور بودید تو کلاس می‌دیدید اینجا ماه تکرار کردیم آرومتر صحبت کردیم که شما به توانیدون تکرار رو بنویسید و مسلط بشی چیزی هم ندارید همیشه بحر طویل یعنی هر کدوم از این بحرهای یک جلسه درس است و به طور کامل و حتی گاهی اوقات وقت می که یکی دوتا تمرین هم می شد از بیت دیگری که ما می دادیم حل می کرد. که لزومی هم نداره یعنی شما همین بیت هایی که ما داریم الان دوتا بیت خوندیم دوتا دو بیتی طویل مقبوز و طویل صحیح رو شما دیدید همین حال حفظ می کنیم با اصطلاحات خودش یاد گرفت این کارو می کردیم همیشه الان من به خاطر همین هم آروم صحبت کردم هم روانتر اومدیم جلو میخوام این طویل محضوف اینکه که آخر رو بگذارم برای اول جلسه بعدمون که اول جلسه بعد یه اقول خودمون یادآوری نسبت به بهر طویل داشته باشیم ما شو جمع جور کنیم این که آخره بخونیم بریم سراغ بهر بعدی که در واقع شما هم با مطالعه کردن این دو و اصطلاحاتی که داره درست شد اون مباحثی رو که ما توی قسم سر اونش مطرح میکنیم یه تکرار بیشتری براتون بشه و راحت تر بتونید بگیرید بهر بعدی رو خواهیم خوند انشالله هفته آینده بهر بسیط و هم اینطور ادامه میدیم چیز خاصی یعنی یکی یکی تا بحر رو که با هم دیگه کار بکنیم شما پرید مبهست و با قول خودمون اون رموز کار کاملا تو مشتتونه و از من مسلطتر خواهید شد. چون جوان هم هستید و قدرت و حافظتون هم بالاتره با چی بود؟ تو داستان مزید میرید حتما یه مقبار میگور ماهیو از این چیز هم میخورید فسفور مغزت میره بالا و قشنگ اینها رو حفظ میکنی. درست شد؟ شما رو به خداوند صبحان میسپرم. انشالله که در پناه حق تعالی معفو و معید و منصور علیکم.